شنبه و ایستم مسی، هوش داوستی، هوش داو احمایی، و و شترم چاو احورایی ای این درگو پیو دادت واسدارم به خوشنوگی خداوند جان و خرد و با درود بر روان و فروحر عشوزر تشت و همه زنان و مردان نیک و پارسای دنیا و با درودی دوباره و گرم بر همه شما هم اندیشان، هم زبانان، هم کیشان، گرامیان، هم میهنان دانشویان، دانشپجوهانی که در این تالار گرد آمدید و کسانی که از رادیو به این گفتگو گوش میکنید برای دوستان خوش آمدید امروز پنجشنبه دیگر است روز سروش، سروشی زد و ماه آبها آبان ماه این بار چند تا جستار یا مغوله رو در نگر دارم که با شما در موردشون گفتگوی داشته باشم نخستین چی که میخواستم بگم اینه که چند روز پیش در یکی از این رسانه های که, که از دوستان گزارشی می دادند از یکی از جدیدترین آینهای سدر پوشی که در جایی در جهان انجام شده بود و ایشون از جمله چرین گفتند که در این آین من چندین نفر رو زردتشتی کردم خواستم که خب به این بهانه یک بار دیگه چه به ایشون و چه به دیگر دوستان کسانی که چنین میاندیشند این رو توضیح داده باشم بگم که نه چنین نیست من یا ما کسی رو زرتشتی نمیکنیم. زیرا که اصولا گزینش دین یا شیوه جهان بینی و راه و روش زندگی امریست شخصی و فردی و هر کس در گزینش خودش آزاد و کسانی که به این گامه یعنی گامه پوشی پای کسانی هستند که گزینش خودشون رو انتخاب خودشون رو کردن و در پیشگاه خودشون و در پیشگاه اهورامزدا به بهدین شدند با گزینشی که کردند. و پایین سده تنها برای گونه یاری دادن بینان هست که بدانند تنها نیستند و در این راه که برگزیدند، هم پیمان میشند هم پیمان میشند با دیگر مردمانی دیگر کسانی که پیش از اونها این راه رو برگذیدان رفتند و از سوی هم به برای همیهنانمون با انجام این آین که ریشه در تاریخ و گذشته و نیاکانشون داره به گونه‌ای ای هم خود رو با اونها هم پیوند و همازور حس می کنند حقوقت خب وقتی گفتم همیهن همیهنن برای اینکه داریم هستند و خواهند بود غیر ایرانیانی که ایرانیانی که به هر حال به شیوه خودشون از نگاه خودشون برگزیدند و حق کدوم هم به هر روی انگیزه های خودشون رو دارن. و به راستی باید گفت که آنچه که انگیزه زرتشتی شدن این همینان میشه هران کس و چیزی است که در زندگی شخصی و خوازمانی و اجتماعی این کسان روی میده و انگیزه میشه تا چشماشون باز بشه خوب بعد دیدگاه ما دسته که از اون خواب و بیهوشی بیدار بشن و با چشمال باز و وجدان بیدار راه خودشونو رو درست برگزنند من و یا هر بهدین دیگری تنها میتونه از راه درست و عشای زندگی کردن و رفتار کردن خودش شاید که بتونه نمونه و الگویی بشه برای دیگری درگزینشون گذینش خودش و تنها از این راه میشه دیگران رو زرد داشتید پس یکی سبب میشه که ببینن چه چیزی رو نمیخوان و دیگری سبب میشه که ببینن چه چیزی رو میخوان خب امیدوارم که این رو دریافته باشید و اگر کسی دیگر میسخن رو گفت و پرسید پاسخ همین مورد دیگری که چند نفر از یاران خواسته بودند که در موردش کپی زده بشه. پرسشی است که شاید بشه اینجوری عنوانش کرد. گاته ها گرایی در برابر اگر بگوییم سنت گرایی. البته اگر این نام ها که روش میذاریم درست و گویا باشه زیرا که از این فننام ها، از این بچه‌ها، از این واجه ها به شکل های گوناگونی در این تارهای گذشته به ویژه استفاده شده و خود من هم شده که گاهی از خودم با یا شیوه نگرشم با, با فرنامه گاتایی یا گاتایی یاد کرده باشم و خب هستان هنهایی که میپرسن که چگونه است و کسانی که شاید نگرش خودشون رو جور دیگری میدونن حالا باز میگم واجه ها رو بکار بودن فقط به خاطر شناسایی سکی گرایی یا آینگیراهی یا رستاگیراهی هر چی که بخواییم نامشو رو بذاریم و هرکی دیدگاه خودش داره بر همین انگیزه درست دونستم که بر این پرسش و به ویژه چون پرسش شده بود یک روشنی بیشتری بیاندازم و دست کمش اینه که دیدگاه خودم رو روشن و شفاف و با انگیزه هاش. برای همه شما بازگو کنم نخست بذارید این رو بگم که اگر هر کسی به شما گفت که حقیقت را می داند و تنها اوست که همه حقیقت را درست می داند و درست می گوید بیگمان به این کس شک کنید چون هیچ انسانه راستی آگاه و براستی خردمند و من نمی تونه چنین داوی یا ادعای داشته باش. بنابراین آن نیست که من برای شما میگم نتیجه و پیامد پجروه شاب و دانش های فرا و بینش های دریافتنی است که در درازای زندگی خودم و تاکنون به اونها رسیدم و باز هم امکان داره در اثر دانش و بینش بیشتری شاید روزی بخشی از آن چیزی که امروز میبینم باز به گونه‌ای دیگر ببینم و از آنجایی که باور و دین و خاست بنیادین من بران هست که در پی راستی ها باشم پس هر جا که خرد نوری رو انداخت و راهی روشن کرد من هم تلاش دارم تا چشمان خودم رو همواره باز نگه دارم. این حال دوستان نمیگم که از خودم تعریفی کرده باشم بلکه میخوام بدونیم که نگرش من چگونه است آنچه که در مورد این دین آین و همچنین باورها و دیدگاه های دیگری که در جهان وجود داره ولی ببیجه در دل فرهنگ کهانسال و دیرینه ای ایران زمین نهفته است و میشه گفت اینه که اگرچه شاید اون سراندیشه ها یا اون اندیشه های نخستینی که یک روزی در یک زمانی از جای آغاز شدند و سپس دگرگون شدن تحول پیدا کردند و هر کدوم شاید دگر شدن تبدیل شدن به یک سیستم باوری به یک کیش به یک آین به یک دین اون اندیشه های نخستینشون شاید ساده بود ولی خب به مرور زمان دگرگونی ها که پیدا میکنن شاخ و برگ می گیرن شکل و رنگ و بوهای گوناگون به خودشون می گیرن رونه ماهاشون ظاهرشون دگر میشه یا به گفته شد بتونیم بگیم گاهی پیچیدهتر میشه کمپلکس میشه یعنی چی؟ یعنی لایه های گوناگونی میاد روشو رو می گیرن که دیگه دیدن اونچه که ااصل از مقص از زیرربنا هست ب مایه و ریشه هست سخت میشه به ویژه هنگامی که گذشت زمان و نبودن دانش بسنده و کمبود یا بهتر بگیم نبود فضای گفتگو و اندیشه آزاد و به دور از پیورزی یا تعصب ها و خوشکندیشی ها سبب شدن که اون حقیقت و واقعیت راستین پنهان بمونه و به جای اون یک میشه گفت نیم چه دانشی در هم و بر هم با دانش و آگاهی اشتباه گرفته میشه مثلا یه نمونه بیارم از از اون که دانش روز نامش رو میذاریم برای نمونه نگاه کنیم نخواستین دید رو که در مورد قوانین فیزیکی و چگونگی برای نمونه جا به جایی و حرکت چیزها خب اون چیزایی که در زمان ما بود اول خیلی ساده بود نیوتنی به قول معروف بود و بعد به مرور زمان و با چند کاو بیشتر نتیجه گرفته شد که نه به این سادگی نیست همه چیز هم مطلق نیست بلکه از اونجا که همه چیز در جنب و جوش و جا به نسبت به هم دیگر پس نسبیت وجود داره اومد از نسبیتی گفت سرعت نور اومد و زمان و سپستر هم آن چیزی که به نام فیزیک کوانتوم میگیم اومد بعد هایی به نام استرینگ تئوری یا هم توری ریسمانی بهش میگن سوراخ‌های سیاه و مانند اونا خب اینا از یک سو پیش حالا به گونه ای دانش هست ولی ببینیم که از یک سو به نظر پیچیده تر میشه از سوی دیگه از مولکول و اتم رو شناختیم و پیدا کردیم حالا هی میخوام ریسترش کنن بریم تو ببینیم که دیگه ریستر از اون چیه اون دیگه کوچکتری انصر یا اون خشت اون آخشیجی که مادر و نیروی کشش رو می سازه چیه خب میبینیم که از یک سو به نظر میبینیم که همه چیز رو پیچیده و می کنیم، و از یک سو هم میخوایم هی کوچک رو ساده بکنیم البته انسان این کار رو میکنه چون که میخواد همیشه چی بیشتر بدون و بفهمه خب در گستره دانش هایی که ما مینوی هم مینامیم همین روی میده و پدران ما سطح و شاید هزاران سا بیش میشه گفت به گونه‌ای به دانش های ریستر دست بدا کرده بودن اون هم نه از میانه میکروسکوپ ها و تلسکوپ ها و که از راه دیدن طبیعت پیرامونشون و جرف نگری در اون همون خیلی وقتا پیش دریافته بودن که برای نمونه در اون هر ذره و دانه ای، دو نیروی همزاد و همیستار همیستار یعنی زد پاد هم بهش میگیم که وارون هم باشن وجود دارن همونهایی که امروز بهشون میگیم نیروهای کشش و رانش یا به عربی جاذبه و دافعه اونها هم به زبان خودشون دارن میگفتن مهر و اناهیته و میدونستن که از کش این دو نیروی درونی و این دو پاد که وقتی یادتون باشه این واژه پا که امروز میگیم پا از همین پاد میاد هستن از این کش اینا که آفرینش و دگرگونی و جابجایی جایی شکل میگیره حالا از کجا فهمیده بودن؟ من هم نمیدونم اینا رو امروز خب ما پیدا کردیم پروتون و الکترون و نوترون رسمش رو کذاشتیم یکی مثبت، یکی منفی یکی هم بدون بار خونسا نوترون. که این خیلی جالبه من سپس پستر وقت به این بر میادم دوباره و اینو یک سنجشی میکنم با به گوشایی از فلسفه خودم خب اونها برای خودشون فلسفه داشتن که اینها رو امروز ما به شکل افسانه، و داستان و استوره و بندهش میبینیم فلسفه زندگیشون بوده خب اگر ما بتونیم کدید دریافت و فهم گشایش این مصدورها و این افثانه ها رو به درستی بفهمیم می‌بینیم که اونها چه نگاه انسانی و زندگی داشتن خب از یک سو هم در اثر بسیاری خب، ها و کمدانشی ها همون دیدگاه های ساده ولی بیریاب و بنیادین و زیبا به زندگانی در اثر همین شاخ و برگ پیدای کردن ها رنگ و گرفتن های زیادی دیگر شدن به پندارگرایی اگه بخوایم بگیم در همه زمین های زندگی بر اثر نفهمیدن اون فرسقه آغازین اون داستان ها چی شد دیگه دیوان آمدن و پریان آمدن و خدایان پنداری و به آسمان هفت اشکوبهی و دوزخ زیر زمین و مانند اینها و خدایان پنداری در زمین آسمان خب هماره بودند و هستند و خواهند بود کسانی که سود خودشون رو هم در این نادانی ها یافتند و با راه و های رو خودشون به اونها هم دامن زدند و میزنند تا انسانها رو در اون راهی نگه دارند و سود خود ببرم خب در اینجا در اون زمان کسی پیدا میشه مالان در رو زرتش اینها رو میفهمه میبینه نمیتونه دروخار بپذیره این دروخار دریافت اونها رو برای مردمان خودش گفت دوباره بازگردند به همون سادگیش به همون زیباییش و برای ما هم بیادگار گذاشت گفته هاشون خب پس, پس از ایشون هم به هر حال به گونه هایی خب مردمی که میان هر, کی، هر کسی آن چیزهایی که خودش میبینه برداشتهای خودش رو یا باورهاشون رو میارن و در هم میشه پیشیده سازی میشه اگه بخوایم بگیم البته خیلی از اینا هم خودشون اون زمان خودشون میدونستن که چی دارن میگن ظاهرا چنین باید باشه اما آنچه که به دست ما رسیده این خب چون دانش اونها نتونسته درست به ما برسه ما تنها یک رونما رو میبینیم یه ظاهر رو میبینیم تمام این برها بشرتیه نوشته ها و کتاب ها و که از قدیم برامون مونده و هر کدوم هم یک برداشتی ازش میکنیم که گاه این برداشت ها میتونه عدیز بعضی رو روی هم قرار بگیره خب حالا راه چاره چیه بده من باز ساده سازی است. بازگشته به همون بنیان ها نخست این گام بعد این باشه تا گمراه نشیم سردرگم نشیم و دست کم نخست پاهامون روی زمین بند بشه ریشه بگیره درست بشه سپس اگه دوست داشتیم میتونیم به کندکاب در بقیه بخشا بپردازیم و تلاشی هم در فهم درستش داشته باشه از اینجا میخوام به این نتچه بسن دوستان که اگر خود من هم گاه بیگاه به گاته ها اشاره میکنم و از اونجا آغاز میکنم برای همینی که سرگردان نشم و نشه و ها رو شهار داریان. خب البته فهم و درک درست گاته ها هم به لطه کهان بودن زبانها و گذشت هزاره ها شاید در دیده برقی کار ساده ای نباشه و برای همین هم برقی برای ما که نمیشه زیاد, زیاد در ترجمه و تفسیر کاتاها ساده انگاری کرد چون یک چیزی بین دین و فلسفه است. ولی از سوی دیگه هم خب اونها که تلاش در برگردان و فهمان داشتن برای خودشون چه برای ما به درستی هم میگن امروز به دلیل پیشرفت دانش زبانشناسی و پجروهش های نسبتاً بیشتری که در دوران ما روی متون قدیمی شده و میشه امکان فهم درست اونها هم بیشتر شد از روی دیگه که به ها دیگه چه چیزهایی در دسترس ما هست تا از روی اونها بتونیم بفهمیم که پتران ما چگونه می دیدن و می و آیا در اونها چریدهای بیشتری برای فهم این دانش وجود داره یا نه که البته که وجود داره اما خب باید بداشت بگن در میان همه این نوشته ها در میان بخش های گنابونه عوستا یه اشتا یه خ دربستان بند کتاب های پهلدی بندهشت کرد هرانچه که در دست ما مونده این کلید ها رو باید یک یکی پیدا کنیم و اونها رو باز کنیم میخواست اون زمان که درست فهمیدیم میتونیم بگیم که حالا می و برای دیگران هم بگیم و یانه بهتره که باز میگم برای اصول بمونیم تا نخست اونها رو دریابیم زیرا که از اون پس که هر چیز دیگه که بخونیم بشنویم میتونیم اونها رو به این اصول. قیوند بزنیم و از راه اونها در واقع تحریفش کنیم پس ها به جای خود عبستا به جای خود متون پهلوی به جای خود همه سنت ها و آداب و رسوم که از قدیم به جای موندن هم جای خود دارن همه هم ارزش و جایگاه و پایگاه خودشون دارن البته شاهنامه فردوسی رو هم نباید فراموش کنیم به که به گونهی میشه گفت که همه اینها رو در خودش داره و به راستی خیلی کلیدها رو هم در خودش جا داده اون داستان دیگر دارد برار روان سرایندگان و سامان دهندگان هم, هم به ویژه پایان بخش اون که شد رسی توسی باشه شاد باشه و یاد و نامشون پایدار باشه حالا پس از این همه مقدمه چیلی کردنم میخواستم به اینجا برسم و دوباره بگم که نخست پایه ها رو بدونیم و بفهمیم پایه ها چی هن همونجای که همونه که تو این چند بار براتون گفتم به نام همشاز بندم و پایه هایی که از آزادیش آغاز کنیم آزادی بنیادین انسان خیشگاریش، نیکی، راستی، داد، خرد، مهر، دلیری، هنجار، سامان، سازندگی، آرامش، شادی شادزیوی اینا هستن و فهمیدن اون که اون چی که راه راه اینا رو میگیره چیا هست دروغ چیست آزار چیست خب زمانی که همه همه ما دیدیم و پذیرفتیم که برای نمونه نیکی و خوبی اصله خب در اینجا همه همبین شدیم همدین شدیم حالا اینکه این ریشه نیکی آسمانیست یا زمینی میشه یک پرسش درجه دور و یا اگر دیدیم و پسند دیدیم و پذیرفتیم که راستی بهترین نیکیست پس باز هم همبین شدیم همدین شدیم خب براستی که میتونم بگم برترین و نزدیکترین واقعیت اینه که همین مفایی دوستان با زندگی روزمره ما کرده. نه در آسمان ها اونا ها باید جست و با بهشت و پیوند دادن این مفاهیم با آنچه که دور از دست رسه و پنداریه دردی رو دوانه میکنه که هیچ به مشکلات هم میتونه بیفزایه البته زمانی که میگم زمینی منظور من این نیست که مفاهم مینوی باورها و اون شاید بتونم بگم بخش نادیدنیه همین جهان وجود نداره اون داستان دیگه‌است که موضوع اینه که در خیال و پندار و وهم و اینها گم نشیم. در این حال بخشایی که با احساس ما ساز کار داره با بخش زیباشناسی با بخش موسیقیایی آفرینشی هنری اینها رو ما نیاز داریم که خوراک شایسته بهش برسونیم برای که اینها به زندگی رنگ و بوی شایسته میده به زندگی امید میده اینجاست که جشن ها آداب و رسومی که این خوراکار رو برای ما فراهم میکنند اینها هم جایگاه درست و شایسته خودشون رو دارند در زندگی باید داشته باشند و خوتا سخنان که پامون رو روی زمین صفت رو کنیم سرمون در هوا باشه. توجه کنی نگفتم سر به هوا باشیم بلکه گفتم سرمون در هوا باشه به بالا سرفراز اگر جوردگی بخوام بگم خب این خود واجه هوا هم خیلی جالبه اینا هر کدوم از اینا داستان داره این هوا هوا این هوا همون هوا اهو هم شده این خوا همون خوت خوتهای خود در واقع اهورا رو از اینجا میاد خود هم از اینجا میاد یعنی انسانی که سرش در حواست سرش به سوی اهوراست از سوی و سرش به سوی خود هست یعنی انسان بر پای خود ایستاده پس نه چه میگیرم هم گاته ها هم بقیه برشای عویستا هم متون پردبی همه عزیز هستند همه جا و جاکای خودشون نرسند باید درست نخست اونها رو خب. پیش از اینکه که بخش دیگری رو آغاز کنم از سامانگر گیرامی میخوام که یک موزیک زیبا برای ما نوازند پخش کنند تا بتونیم سپس ادامه بدیم بايد بود. همچون که سامان گرفتیم نشستند سرودی هست. اهل گرفته گرفت از سرودی سر از کشور افغانستان که آرایشون رو سروده و یک بانوی ژاپنی هم اون رو اجرا کرد. خب چقدر زیبا، چقدر زیبا. بسیار خوب دوستان. باز می‌گردیم به کفته گویی. یک راهی رو که من میبینم برای که آروم آروم ما بتونیم این فلسفه رو این این جهانبینی رو این دین رو بهتر و بهتر با هم بشناسیم اینه که گاهی وقتا یکی یکی این مفهوم ها رو میگیرم و سرمی کنم بازش کنم و از سوی های گوناگون نور و روشنی بهش بندازیم تا بتونیم ببینیم و از میان اونها اون رو دریابیم خب امروز میخوام به سروش بگردم چرا که خب امروز روز گفتم سروش یا سروشی زد است در مورد سروش خب بارای پیشم به گونه گفتم خب یاداوری میکنم گفتیم که سروش از سره و میاد یعنی شنیدن حالا اون رو ماناهای گوناگونی تفسیر و تعبیرهای گوناگونی براش داری از یه که میخوندم یه که نوشته که سروش سروش ایزد همیشه بیدار است تو هرگز به خواب نمیدود و آفریدگان اهورا مزدار پاسباری میکنند جای دیگری از اون با فرمان برداری فرمان بری یاد شده جای دیگری آن روی که من هم میگفتم ندای درون، ندای وجدان، گفتم از خرد سروشی یاد کردم یا آسن خرد، خردی که از درون هر کسی، درون اهورایی از کسی میاد بیرون، خرد گوهری، خرد زاهی، خرد ذاتی، خرد اهورایی، اه بخوام اینجوری براتون بگم که همه اینا ممکنه به شیوه های گوناگونی تعریف یک چیز باشه چرا این خرد ذاتی و خرد اهورایی اه، اه، اه، اه، چگونه میشه که همیشه بیدار باشه به خواب نره آفایگان اهورا اه، اه، مزدارا پاسبانی کنه این،, این مفهوم همانند خیلی مفهوم های دیگه که در چارچوب یک دین و بینی میاد برای ممکنه یکی این رو همجره همیشه گفتن یکی آسمانی نگاه کنه یکی اگر اسمش رو بذاریم زمینی یا مینوی و هر حال این آنچه چه که سروش کارش که از درون تاریکی ها به انسان ندا میده اون،, اون،, اون خرد اون ندای درون رو با آدم میرسونه که کجا چگار بکنه تا در واقع زندگیش اگه بخوام بگیم به خطر نیفته از یک دیدگاه شاهنامه رو وقتی اگر بخونید در آغاز کار سیاوش رو میبینیم که برای نمونه سروش میاد و از از خطر اهریمن براش میاد و, و و و روی این سروش که بعدها میتونم بگم که تبدیل شد به یک فرشته و در عدیان دیگه به گونه‌ای جای فرشته‌ای که از به هر حال خداوند اون برای قیام برانش پیام می‌آورد رو گرفت و و و میخوام به این بخش چیدش بپردازم به این مانایی که براش به عنوان فرمان برداری یا فرمان یاد شده بپردازم و در مورد خود واژه فرمان براتون کمی بگم و ناهمسانیش یا فرقش با اطاعت کردن ببینید در پیش هم شاید گفته باشم خیلی از این واژه ها هست که به نظر میان که شاید یکی باشند ولی خواستگاهشون و مفهومهاشون گناگونه خواه کردن برای نمونه با آفریدن یکی نیست خرد با عقل یکی نیست. اینجا هم فرمان با امر یکی نیست و فرمانبری با اطاعت کردن یکی نیست. امر چیزی است که از سوی کسی میاد. که از اون کسی که امر بهش میشه یعنی امر بر بریده است یعنی پیوندی با هم ندارند. اون چیزی که ما بهش پیوند مهرامیز میگیم. برای نمونه الله می میکند و انسان که تنها امر بر است باید اطاعت کند اما در فرهنگ بهمنشی فرهنگ بهی گفتیم خدا با انسان همگوهر است همسرشت است یعنی با هم در پیوندند اصولاً در این فرهنگ همه چیز بر پایه مهر است مهر در اینجا به مانای کشش کششی که خواستن درش است پسند دیدن برگزیدن و پذیرفتن فرمان اصلا واجب نگاه کنید هم فر داره و هم مان داره مان یا همون من منم هم. حالت فرگونه داره فر و مهر یک حالت چششی داره حالت مهرامیز داره و همینطور وحومن هم مانند این هاست در واقع به راستی همون وهمنه که خودش رو در انسانها گسترده و خواست و خرد وهمنی هم نیاز به زمان داره تا در اجتماع تا در مردم جا بیانده یعنی میخوام بگم که امر نیاز به زمان نداره فوریست قطیست قط اصلا واجه قطع وقتی مگیم یعنی بریدن آمر بریده است از امر بر ولی فرمان رو با خرد و خواست بهمنی میپذیریم به سوش کشیده میشیم میپسندیم میخوایم، اگر درست بدونیم انجام میدیم ولی امر رو اگر اطاعت نکنیم چی میشیم مجازات میشیم این فرقو دریافتید دوستان این فر یا مهر نقش بزرگی در فرهنگ ایرانی بهی و مزدیتی زرد بازی میکن و از اونجا که برای فهم و درک بین بهی و دانستان تفاوتش با دیگر فرهنگ ها و بینی هایی که از فر و مهر در اونا خبر نیست دانستن این دو مقوله و مفهوم خیلی مهم هستند این رو بگم که این مهر مهری که من اینجا ازش گفته بودارم با اون میترای تاریخی که میتراس هست یا مرداس اینا یکی نیستن من دو چیزی گوناگون صحبت میکنم اون،, اون میتراس که میگیم اون یک کیش و آین جداگونه ای ازش شکل گرفت که از جمعه هم یا قربانی کردن و کشتنه جانداران و گرفتن جان جانداران گربانی کردن برای میتراسی که از ویژیه های اون بود همونی که از جزرتوشت باش مخالفت کرد برخورد کرد و البته که ما هم اگر بهدیان خوبی باشیم باید که با اون مخالف باشیم یعنی با آزوردن جان و یا کشتن از هر شکل و گونه یان نه یکی از میتونم میگم نام های خدای ایران بود یا بهتره بگیم پیوند میان خدای ایرانی و دیگر آفریدها بر مبنای مهری و کششی بوده و فر هم همین معنا داره در بندهش یا اسطوره نخستین زن و مرد اسطوره ایرانی که نام مشکیه و مشیانه داره در اونجا هم میبینیم که اون فر در میان مش و مشیانه هست و اون دو رو به هم پیوند میده اون دو رو به هم میامیده می و از اونجا که این زن و مرد در واقع همه انسان ها همه مردمان هستند پس در فرهنگ ما فرد در میان همه مردمان هست همه آفریده ها به هم با کشیده میشن، به هم پیوند دارن. چیز دیگری هم که نقش فر و مهر داره، اون هم گفتم خرد هست خرد خرات وحومنی خردی که حتی میتونه میان این متضادهای سپنتا من و انگر من رو هم به هم جوش بده و نظر انگر من تبدیل به احری من بشه بلکه اونو به انگیزه تبدیلش کنه اون مهری که از فر کنند میشه همیشه در میان مردمه و باید باش و مردم گفتم به هم از راه نر و از راه پیوند از راه سامان و نظم و هنجار و هم پیوند پیدا میکنن این هنجار رو هم برای میگم هنجار وقتی ما میگیم یا سامان و نظم هنجار از هنج میاد از آهنج میاد از آهنگ میاد یعنی یک, یک نظم آهنگین و سرودگونه اون مش و مشیان و فر میان. که هم جوان هستن هم مه دارن میانشون و هم برابر هستند اینا خیلی جالبه حالا ما رسیدیم به این مسائل اصطوره ها ولی هر کدوم از این حالی نگاه جرفتری بهش کردن خیلی چیزا رو میکنه اولا اینو من بگم این اونایی که نمیدانند دانند مردانه به نظر میان. مرد هست برقی ذره خیلی ها ولی در واقع کیومرز زن مرده گع و این مرته که خب اصولی مرد شده گرد واقع کتاشوی مردم است مردم هم وقتی ما میگیم یعنی زن و مرد از پس این مش مشیانه هم جوان هستند هم مهر هستند و هم هر دو با هم در این مانند گیاه از زمین می رویند و بعد به انسان دگر می شند خب اینا رو گفتم که از به زبان دیگری هم براتون گفته باشم که این سرندیشه های تفکر و دیگاه فلسفه ایرانی بودند و اسطوره در اینجا نقش فلسفه امروز رو بازی می کرده ایرانی مهر برابری و همیشه جوان شدن رو میخواسته و آرزو داشته و اون رو در استوره و سپس در دینهاش میگذاشته مهر در همه جا هست تنها باید با مهر ورزیدن مهر و انگیخت و برانگیخت باز این مهر از عشق اون عشقی که ما امروز روز این عشق هم از همون آشام عشق میاد اشق ولی مهر ازش بسیار گستره تره کلی تره برای نمونه در در اجتماع مهر اصل گفتم پیوند مردم است، پیوند اجتماعی است. امروز واجه رو به کار میبریم مانند سولیداریتی در, حالا در انگلیسی یا در زمانهای این, این مهر در به جای سولیداریتی میتونه بشینه فرهنگ ایران بر پایی مهر بنامیشه و نه ایمانه ببینید بونه فرهنگ های سامی چی هست داستان ابراهیم است که به دستور بسلا یهوه یا سپس خب الله در فرمای دیگرش فرابوده پسرش رو بکشه که یک جا پسر اسماعیل هست یک جا قساخ هست که قرار قربانی بشه و اینجا ابراهیم برخلاف اون وجدان و مهره به فرزند چون ایمان داره گوش میکنه و میخواد که چکا کنه؟ میخواد بکشه که البته در اینجا خب یهوه اون میش رو، میشی رو میفرسته به جای ابراهیم میگه خب این رو به جای فرزند بکشه اما موضوعی که به هر حال ابراهیم به خاطر به گفته ایمانش حاضره که چیکار کنه؟ بکشه و خب میتونم بگم که شاید این جنگ های دینی و جهادها ها و اینا بر این پایت بنا شدن ولی فرهنگی ایران یه همچین پروانه ای رو نمیده یه همچین اجازه ای رو نمیده پرسش سپنتایی بودن سپنتایی بودن زندگی یا به گفته ای قداست جان در واقع این بنیاد حقوق بشره بنیاد قوده های مردمی یا حقوق بشر باید باشه این برترین اصل فرهنگ ایران این جانی که از اون داریم سخن میگیم فراگیره یعنی جان همه انسان ها و همه جان دارانا در بر میگیره مساله قدوسات جان هزارها پیش از حتی 8000 در ایران مطرح بود اما با اومدن میتراس که گفتم به اشتباه با میترا میگیم این میتراس یه آیین بود یه آینی آورده شد که بر پایه‌ی قربانی خونی قرار گرفت و اساس فرهنگش، آفریدش از راه بریدن بود. این خود این واژه بریدن یا بریدن در تورات معنای پیمان و میثاق و عهد رو داره. کاری که اجوزارتوش کرد، قیامی بود برای بازگرداندن قداست جان سپنتایی بودن جان و زندگانی و مبارزه با خون ریزی و میتراستگری همجو که در گاتاها پارهای پیشم خوندم در نخستین بند گاتا زرتشت میاریشی که میکنه میگه که بشود که با کردارهای عشایی و با خرد و وحومن گیوش اروان را خوشنود کنم گوشوروان بعدا در زبان آمیانه گوشورون بهش میگفتن زردش گوشوروان یعنی جان جانان روی همه جانها پس بنابراین میبینیم که آن چه که در فرهنگ ایران اگر بخواهیم نام مقدس یاسه پنتایی روش بذاریم اون جانست و زندگانی ام تا اینجا دیگه من فکر میکنم که زیاد دیگه به فلسفی گفتن نپردازیم از همین داستان جان و جانداران اگر من بخوام یک هران تقریبا ده دقیقه ما داریم به یک ساعت پیش از که به پرسش بپردازم یک پرسش دیگری رو به کتایی هم به حال اجازه پرسش هاست با در میون میگذارم و اونی که داستان گوشت خوردن یا نخوردن در میان زردشتی که خب برخی خب میگن نباید خب برکی اصولا گیاهار هستند برخی هم خب میخورند خب از یک سو ببینیم کلا پاسخ به این پرسش هم مانند بسیاری دیگر از پرسش هایی که در پیوند با قوانین و آین ها و بکنکن ها بایست نابایست ها یا شایست ناشایست ها دست کم اینا دو گونه پاسخ دارد از سوی خب بسیاری از زردش جان یه پاسخ اینه که میشه خب در دین ما تنها اصول و بندمایه ها هستند که همیشگی هستند و بی زمانند و بی, بی مکانند و ثابت هستند و باید از اونا پیروی کرد. و دیگر چیز که به زمان و مکان بستگی دارند با توجه به دانش، با توجه به قانونمندی های اجتماعی و گروهی و با عجبزاری البته با این ها و سنت هایی که همه با این حصول هستند با این بونمالی هستند به گونه شایست ناشایست با اونها بخورد باید بشه نه بایست نابایست. خب یک پاسخ دیگه شم اینه که از توی برخی که به هر روی ما بر پاگه ببیرشه اون تجربه ها و آزمون های پدران و مادرانمون و بر مبنای حصول دینمون حال ما یک باعث ناباعثت ها و یک قوانینی باید داشته باشیم و هر زرتشتی هم باید اونها رایت کنیم اکنون ما جز به هر کنوم از این دسته ها و این شیوه نگریش رو برداشت باشیم هممون با هم می دونیم که آنچه که با یعنی باید بدونیم آن چی که با خرد سازگار هست شایسته اجرا شدن هست و حالا با نگرش به این گفتم یک نگاهی بندازم به پرسش گوش خوردن یا نخوردن از یک سو میدونیم که گفتم گاته ها بر شکل و فرم کوتاه و مختصر مفید خودش سرندیش ها هستند خب در اون جا هم می‌بینیم که از کشتن و قربانی کردن ببیشه از کشتن جانوران به سختی نکوهش شده. دویجه اونهایی که با بحانه دین و آین و اینها می کشن و غربانی می کنن. و همجایی گفتم از پایه جان و زندگی سپنتاییست و ای مقدس است از دیگه فرهنگ، ادبیات نوشتارهای کهان ما از عوستایی تا پهلوی در بردارنده آگاهی، دانش، آزمون ها و تجربه های پدران و آدران ما در درازای هزاره ها که خب نه درست و نه بخردانه است که اونها رو نادیده بگیریم و گمان کنیم که خب ما امروز از اونها خیلی بیشتر میدونیم آره شاید در مورد فناوری و تکنولوژی و دانش هستی و اطومی و ملکولی بیشتر بدونیم اما به همان نسبت از دانش و بینش جرفتر و اون که مهرامیستر رو حیوان زننده تر با همه آفعینش و آفعینیت ما دور شدیم یعنی اون از اونها ما دور شدیم و به ویژه که چشمان ما کشتن و کشتار و گرفتن جان رو نمیبینه چیکار میکنیم چشم دل و وجدان خودمونم بر اون میبندیم و از دیدنش پریز میکنیم خب حالا با همه این توضیحات که دادم یک نگاه کوچکی میکنم به این که خب پدران و ما،, ما تا به موچی رو ما گفتن این، تو این کتاب ها تا کنون چی اومده البته خب اگه بخوایم همه رو بگم زمان زیاده به جزیاد زیاد نمیخوام خواهیم بپردازم اما میتونم بگم به طور کلی از خوردن گوشت پرهیز شدیم اگر هم خورده میشه باید بسیار کم خورده بشه و اگر هم گوشتی خورده میشه تنها میتونم میگم روی هم رفته دو جور گوشت بهتر دانستش اگه بخوام بگم یک گوشت گوسفند است که اونم البته شرایط دارد و یک گوشت ما و در این حتی در این دو حالت هم اولا بسیارا گوشفند ماده برنیان که فرزند دارد بچه دارد شیر میدهد نباید خورده بشه. اون گوسفندی که بسیارا از پشمش استفاده میکنیم نباید خورده بشه حدوی این جانوران هم باید در آزادی بسیار زندگی کنند نه اینکه که میبینیم امروز این مرخا و جوجه های بزبخت رو در این جوجه کشی ها به چه روزی میدازن تا یک روزی به ما برسو اون بره بر روی ولی خب گذشته از این دو هر خیلی چیزهای دیگه اومده در بخشای گوناگون عوستا یا حال کتب مختلفی که اومده یه ها و بخشای دیگر هیچ گونه دیگری درست نیست خوردنش ماهی هم مطالباته بگم که ماهی هم فقط گونه های بسیارا کوچکترش کچکتر یا متوسط مایه های بزرگ مایه های پستاندار نباید خورد نمیدونم نباید کشت این سیل دلفینو دلفین و حالا های ایرانی شما زیاد یادم نیست نهنگ نمیدونم خوک آبی سمور آبی شیر دریایی اینا رو نباید خورد نباید کشت خیلی جان دارن که اصولاً مقدس بودن اگه بخوام بگیم سگ به ویژه اسب حتی خوک و بسیاری مرغان دیگر روی هم رفته شاید سفارش بر این بوده که ده یازده ماه از سال به طور میانگین نباید لب گوشت زد حالا دیگه با شرایطی که انسان در برابر جانداران دیگر بر روی کره زمین داره خب با به خرد و با به زندگانی به طور کلی خب شاید گایی وقتا راه چارهایی رو چارهای رو باید ببینه ولی برای تندرستی بیشتر چه برای خودمون و چه برای جهان پیرامونمون بنابراین تا اونجا که میتونیم از خوردن گوشت خودداری کنیم دوستان و بهتر است که از کشته بخوریم نه از کشته خب به نشست امروزمون به قول معروف به شکل رسمی پایان میدیم البته بذارید ببینم که چه پرسشهایی اومده که ما امروز میتونیم به پرسش ها هم پاسخ بدیم پرسیدن که در بندیده سخن از مجازات های شدید برای نمونه 100 بار یا هزار بار تازیانه زدن آیا این تازه تازیان زدن ها حقیقت دارد چرا که یک کسی را هزار بار تازیان زدن چیزی از اون باقی نمیدونن خب اینم جالبه این از اون پرسش که خودش هم پاسخ داره حالا جانم به هر روی پرسش وندیداد یا وی درداد خب میشه یک بار دیگه اگر دوست داشته باشید در مورد اون گفتگوی داشته باشیم به هر روی ما که جایی ندیدیم نشدیدیم که این, این تازیان دادنها شده باشه. اگرم شده راستش من نمیدانم میگم هر کدوم از اینها چرایی خودشو داره چرا این وندیداد به طور کلی وجود داشته و داره از کجا اومده چرا اومده در یکی دو کلام نمیشه به این پاسخ داد ولی به هر روی خب این به گونه ای میشه گفت قوانین از یک سو قبطه فقط قوانین نیست وندیداد در آغازش خب به یه مدار میشه گفتش که چیزهای تاریخی هم توش داره از جمشید سخن به میان اومده و از جا به جایی به سرا که یک ای باشه از یک گونه مهاجرت ها و جا به جایی ها و این از ایناش بگذاریم بخشی هم به عنوان قوانین بهداشتی، قوانین پاکی که اینها هم چرایی های خودشو داره و چرا به اون زبان گفته شده زبان روز چنین گونه بوده برای دورهای گونه این کتابی نیست که یک, یک باره نوشته شده باشه شاید در, در درازای دعیه ها و صده ها همجوری رو هم گرد آمده جمع شده و آن چیزی که امروز به دست ما رسیده نه یک نویسنده داشته و داره نه گفتم در یک زمان بوده ولی این آیا این آره زهارا تازیان زنان توش بوده ولی این فقط نموداری بوده سمبولی بوده یعنی میخواستم میدونی خیلی بدلیه این کارو کردن نکنید ولی من نشدیدم که حقیقت داشته باشه جایی هم نخوندم خب ببینم که دیگه دوستگرم یه دیگر پرسشی نه اینجا هم که پرسشی نیست گردم به تالار خب دوستان بنابراین امیدوارم که آن چیزی که امروز گفته شد به گوششان جان شنیده شده باشه اگر گاهی سخن گفتن من هم یا فهم گفته های من اگر دشوار باشه به من بگید تلاش میکنم از راه های آگون بگم همچی گفتم یک, یک نترگیری میکنم و از آن چیزی که روز گفتم نخست که دشوار نکنیم یعنی پیچیده نکنیم مثلا. خب مثله در نهایت ساده کردن هرچند به نظر ساده نمیاد چرا اگر نیکی اگر خوبی اگر راستی داد اینا که میکیم ساده هست پس چرا؟ خیلی جهان نایابه خب اون دیگه باید تنبال چراهاش باشیم ببینیم چرا دروغ از کجا میاد چرا آزار وجود داره و و و, و. ولی به عنوان بهتین به عنوان زرددشتی به عنوان ای ایرانی درست اگه اسمشو بذارم باز ایرانی شاید محدود بکنه به عنوان یک مردمان درست انسان درست درست بین ونی خواه باید راهو ببینیم هدف بگذاریم ایدئال آرمان داشته باشیم و به اون سو بریم وقتی که راه رو درست بریم خود به خود دشواری های راه رو هم پیدا می کنیم راه حل هاش هم با هم پیدا میکنیم مهر رو فراموش نکنیم میانمون رو میانمونو مه رسون بعد همون که از گذشتهم گفتم من هم این مهر رو همچی که آدم ازش گفتگو می کنه در خودشم حس میکنه. این مهر رو حس کنید نسبت به همدیه نسبت به انسان های نیک و با هم همازور هم همدین و همراه باشیم خب دوست درشتن یک پرسش دیگر بسیار خب این رو هم من نگاه کنم خب دوست دیگری پرسیدن در مورد پرسش من بارها گفته شده و نوشته شده خب در مورد مکان و زمان زایش ای زرطش میخواستم بپرسم. برخی مکان زایش او را در کنار رود جیهون و برخی دیگر در کنار دریاچه او رونیه در مورد زمانش هم هم از 800 سال تا 8000 سال گفتند خاشمندم اما بگویید در سنت زرطش دیم آنچه که سینه به سینه از نیا به شما رسیده چه هست با وقت که این دوست من این پاسخ به این پرسش دشواره اگه بخوام بگیم که آنچه که سینه به سینه رسیده در سنت زرتشتی یعنی آنچه که اگر من زرتشتی از بخوام نگاه کنم که از کودکی تا به امروز آنچه که به من از بخوام بگیم از پدر و مادرم گفته شده از بازرگانمون گفته شده خب در این مورد ها زیاد گفتگوی نبوده و هیچ در واقع بگم هیچ زمان ویژه‌ای که این ثابت شده باشه و اثبات شده باشه خب نبوده که به گوش ما هم سینه به رسته باشه خب آنچه که ما امروز میگم اونم یه گذینش هست تا کنون 4000 سال برخی باس هم می‌دونند. میدونند جدیدتر فکر نمی‌کنم باشه اگر کهانتر باشه اون به نظر من درسته تا اینکه بخوایم به 600 800 ببریم که اون داستان 600 و اینا خب برمیگره به زمان هخامنشیان که اون هم به خاطر همانندی هایی که از جمله در نام گشتاس با اینها وجود داره برخی از پجوهشگران آغازین اون رو به زمان هخامنشیان نسبت دادن که خب بعد از اون بسیاری دیگر پجوهشگران رد کردن و بسیار از اون کوهندتر میدانند اما اینکه کجا باز هم اون از دیدگاه من رو می به نظر من بخش اگه بخوام میگم خاوری بخش شرقی درست شمال شرقی آن چیزی که امروز به نام خراسان بزرگ میگیم اون رود آمودریا اگر باشد رود داییتی آمده به دیدگاه من هم به اونجا نزدیک تره حتی اونهایی که باز ایشون روزادگاه ایشون رو در بخش های باختری میدونن باز هم همه که به هر روی گسترش پیامیشون در بخش خاوری انجام گرفت پیش گشتاسبشا که در برخ بود در بخشای خاوری بودش و زبان راحتها زبان شرق ایران است زبان خاور شمار شرقی من ندارم پاسخی تر از این و زیاد هم بهش نگرانش نباشید حالا از, سو... از اون سو باشه همش مال خودمون بوده <تصفيق> و پیامش هم که خوشبختانه به ما رسیده و دو پیامش بیشتر دقیق خب از اونجا که دیگه پرسش نمیبینم دیگه بهتون شب خوش میگم دوستان و سپاسگزارم که در کنار ما بودید همراهمون بودید و تا باری دیگر درود و بدرود شد خوش و دانیه